لم ولم تسر السيف خدلانا ولم جبين إصغاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ثنا وصفت مران ذات راس كي بما الجمعه تا جمعه کنونی حیات بخشید و درود و سلام بر رسولی که جان و مال ما فیدای وی صلی الله علیه و سلم باشد خداوند منان را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا از طریق رادیوی صدای جند الله با داشته برنامه امروزی به خدمت شما قرار گیریم شنواندگانی عزیز به برنامه امروزی از جمعه تا جمعه خوش آمدید خدا کند صحت و سلامت بوده همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید. از خداوندی متعال در عبادات، هجرت و جهاد شما برکت ها طلب نموده و امیدواریم که تا آخرین لحظه حیات ما را در این راه مقدس، راه مشقت ها ثابت قدم بگرداند. به همه ایما و شما معلوم است که نبرد حق و باطل سابقه ای دارد. و تاریخ بشریت همور شاهدی این گونه رخدادها بوده است هرگاه اهل حق برای نجات دادن هم خود از کجروی ها و این حرافات بپا خواستند، لشکر لشکری ابلیس در مقابل اهل حق قرار گرفته و برای خاموش کردن نور هدایت با انواع نیرنگ ها و دسیس ها سر براورده اند. اما غافل از این سنت الله التي قد خلت من الله تالا اس پیش همین بوده است و در سنت الله تالا هیچ تغییری نخواهی یافت برادران عزیز مجاهدین طلاب کرام یک چیز را فراموش نکنید ما در نزد این اسلام کی ما یکی ایمان داریم که این دین اسکی فقط در نزد خداوند قبول است این دین عهد الله اسلام در نزد خداوند فقط دین اسلام مقبول است یعنی دین را خداوند قبول نمیکند فقط دین اسلام را قبول میکند ما کی لشکر همین دین اسلام استیم چی مسئولت داریم برادران با این دنیایی ای که مای ما شما را اگر ما فریب خوردن به جهنم میبرد باید که ما فریب نخوریم دین فروشی نکنیم عقید فروشی نکنیم اسلام فروشی نکنیم خون شهدار را نفروشیم بیاین از صادقین باشیم بیاین مسلمان حقیقی باشیم در صفی صادقین باشیم Ta' nasbidun jana, walem tasirf al-fadaji fisa'ifi turafir jabin al-razi muu bittadilan, on dagoni فضل المجاهدين على القائدين والصائمين درجة قال لهم جاهد الكفار والمنافقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد وآل آله وأصحابه أجمعين أم بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يخ eman ukoti قاتلوا الذين kummin من wallija jadidukikum فيكم wallija وعلموا أن الله مع المتقين. broadad arani مسلمان ومجاهدين جنب كف kef, uammu rahi islam, akunonna baajat, darkhana tafautna جان و مادر را در راه فش برد قانون الهه و بر افراشتان فرجام توحید و سرنگان کردان کفار متجاوز و ان افراد خبیس مرتد و نفاقی که به ایشان متحد گردیدان علیه اسلام و مجاهدین کمر مخالفت بست کردهان فیدا نموده و از هیچ گناه قربانی دریغ نکنیم من به خدا احد و فیمان نمودم تا وقتی که جان در قلاب من وجود دارد علیه دشمنان خدا و رسولش میرزمیم قانونi خدا و فيمبرشرا در تمام اطراف و في جهان ان شاء الله حاكمي صادم تكنولوجي و بام خي دشمن و در من هچ اثر نمی گذارد با مختازي حكمي فر ورذكار كمي يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فيكم واعلموا ان الله مع ها حق مبارزه می کنیم و از هیچ چیز نمی نه از کشتن، نه از بستن نه از زنجیر می ترسیم از آن روز که در این رافان خودم ترک سر کردم جزّکم الله الحرب مثواه. الدمع تغريه لذته. Voi eläközzulalla, semkhal fedun jaho, voi eläközzulalla, mennralat, fizzahfisoji, hei hei hei hei, hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei در جریان هفته گذشته شب یک شنبه با تاریخ 5 سفر یک عضو دیگر حرکت اسلامی ازبکستان از مجاهدین افغانستان به نام الهام که مسئولیت عملیات ماین و عملیات استشهادی را در ولایت تخار به عهده داشت در نتیجه عملیات شبانه نیروهای خبیس ناتو وادوتن از انصار منطقه به مقام والای شهادت نایل گشت این برادر یک جوان دلیر را با شجاعت بود اگرچه شاگرد مکتب بود ولیکن ایمانی وی قبول نکرد که در خانه نشسته دروس خود را ادامه دید این بود که در صفوف حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته در وقتی اندکی خدمات ارزنده ای را به جهاد و مجاهدین انجام داد و آخرین عملیات استشهادی حرکت اسلامی ازبکستان را که در آن برادر استشادی ما عبدالله شرکت ورزیده بود در ولایت تخار بالا یکی از مرتدین داخلی عضو پارلمان عبدالمتلیب بگ ترتیب داد که در نتیجه زحمات این برادر عبدالمتلیب بگ با چندین تن از محافظانش حلاک گردیده بود از خداوند متعال میخواهیم که شهادت این برادر را قبول فرماید اینا للهی و اینا الیه راجعون الممنوع سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربه ان بعيشك منثورا وجلنانا اليوم زف الى الحور عاشقها ودات في خدر الممنوع سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربه اكنن نوبات بحث دوامي برنامج رصيد درين گزارشات داغي هفته به خدمت شما تقديم ميگردد Afghanistan. Çar Rabbın al-Awal mtabiqi bistehfte Januari. Dar walayat Gazni b-ezni Allahu Taala mujahidin yakı astayrahi b-pilot nirhai natura suquddadan. Kitayraisi suquddaşuda bdeste mujahidin Radimat avtied. Amerika. پینتاغون می گوید که آمریکا تصمیم دارد تا مراکز حملات تایره های بدون سرنشین را از 61 به 85 مرکز افزایش دهد. در قبال این ایالات متحده مسمیم است که عملیات تایره های F-16 و نیروهای های خود را زیرا با وجود مسار زیاد نتیجه کم بدس آوردند. نایجیریا، پنج رمیل اول مطابق 28 جنوری، یک ویدیوی جدید از یک گروه جهادی بنامی بوکو حرام منتشر گردید. در این ویدیو امیر این گروه ابوبکر شیکاو در بیانیه خود میگوید: عملیاتی که به تاریخ 20 جنوری به وقوع پای بود توسط ایشان صورت گرفته است. در این عملیات یک ساد بیست اسکر نصرانی به قتل رسیده بودند. البته گپته می شود این عملیات خاطر قصاص اصرایی که در زندان نایجریه به سر می بوده است. Yaman, 8 ربیع الاول مطابق 21 جنوری 6 کارمندی مؤسسه یوএন در منطقه وادی احجار که با 120 کیلومتری پایتخت یمن موقعیت دارد اختطاف گردیدند. سوریه 8 ربیع الاول مطابق 21 جنوری ظلم و استبداد اسوی حکومت سوریه بالای مردم که در روز دوشنبه در اثر ظلم حکومت سوریه صد نفر افراد ملکی کشته شدند یمن چنانچه در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید دوازده هزار مجاهد از شهر ابیان می که بیت المقدس را فتح می الحمدلله مجاهدین یمن شهر ابیان را تحت تصرف خود در آوردن حکومت یمن نیز احتراف می نماید که در شهر مذکور هیچ حاکمیتی ندارند. آمریکا که در این و عملیاتی عملیات تایره های بی را در آن مناطق افزایش داده است نیز میگوید که مجاهدین قوت های بزرگی را تشکیل دادند و همچنان پیش از دو هفته مجاهدین شهری ردارانیز تحت تصرف قدرت آورده بودند حکومت یمن به مجاهدین گفت در صورتی که شهر مسکر را ریها کنید پانزده تن از اسیران شما را آزاد خواهیم کرد بل مقابل مجاهدین شهر مسکر را ریها نموده و پانزده تن از اسیران خود را از اسارت آزاد ساختن ما در حق برادران یمنی دعا می نماییم از الله تعالی تام داریم که مجاهدین نشاری آبیان را در تحت بیرق سیای خراسان در بیت المقدس ببینیم. آبی كما تلفون شرب الخمرتي فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي يكون للموت كما تلفون شرب الخمرتي آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي شكرا و أقلب مسماعي زرا شنا وندقاني این بود داشته های برنامه امروزی ما با شنیدنی ترانه فارسی همه ای شما را به خداوند قادر و توانا می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عشق می آید زی چشمم عشق می آید زی چشمم چو یادی مادر میکنم سوز می آید زی قلبم سوز می آید از قلبم چو یاد مادر می کنم عشق می آید از آتش من عشق می آید از چو یاد مادر می کنم سوز می آید از قلبم سوز می آید از قلبم فریاد مادر می کنم رفتم راهی خدا، رفتم راهی خدا ما در دعای خیر کن یادی تو را مونسم، یادی تو را مونسم، سانگر بسانگر میکنم عشق می آید زی چشمم عشق می آید زی چشمم چو یادی مادر میکنم می کنم سوز می آید ز قلبم سوز می آید قلبم فریاد می کنم عشق می آید زی چشمم عشق می آید چشمم چو یادی مادر میکنم کنم Suz me ayad zi qalbam zi qalbam me ayad zi qalbam falyad ma dar mekunam Suz me ayad zi qalbam falyad ma dar mekunam رفتم راهی خدا رفتم راهی خدا مادر دعایی خیر کن یاد تو را مونیسم یاد تو را مونیسم سنگرب سنگر می کنم تو را مونیسم سنگرب سنگر می کنم اش می او یان ز چشمم اش می او یان ز چشمم چو در میکنم سوز می او یادت از قلبم سوز می او یادت از قلبم خیادم در میکنم کفری عالم چی فساد, فساد. فساد به خاکی ما کردست ببین لانه ای کفر و فساد بوبین. لانه کفر و فساد به خاک برابر میکنم لانه کفر و فساد به خاک برابر میکنم اشق می آید زی یان ز چشمم اشق می آید زی یان ز چشمم چو یادم در می کنم سوز می آید زی قلبم سوز می او یادت قلبم فریادی ما در می کنم ناری تکبیر ز ناری تکبیر زی سنگر می رو سوی سمو دانکی ما در منزی خونم دانکی ما در منزی خونم این خواب معت در مکن دانکی ما در منزی خونم این خواب معطر در مکنکن اشق می آید زی یان ز چشمم چشمم اشق زی او چشمم چو یادم در می کنم می کنم سوز می او یادت از قلبم قلبم سوز می او در می می شود روز که در می شود روز که در پیششی خدا آیمشهیم ان در آن روز عجری خود ان در روز عجری خود فای ما در مکنمه ان روز عجری خود فایی ما در مکنمه. اش می او یان زی چشمم اش می آید زی چشمم چو یادم در میکنم سوز می آید از قلبم سوز می آید از قلبم فریادی یادم در میکنم اسمه آید از چشمم اسمه آید از چشمم چو یادم آ در میکونم سوز می آید از قلبم سوز می آید از قلبم فریادم آ در میکونم